اون خدایی که اللذی جعل زف فراش ها زمین رو برای شما به این صورت قرار داد اگه بناابش خدا زمین رو به یه شکل دیگه قرار بده یه بحث زن علمی هست لای عضون و چنین و تحوله نمیدونن اگر واقعا به این شکلی که ولمان نگلون خداوند اراده کنه یه تحول این چنانی در زمین ایجاد کنه همه از بین میرن یا نمیرن خب دیگه از نطول امور تورن به یده اما خدایی است که زمین رو برای شما فراش قرار داد سما رو غرف آسمان رو به این کیفیت قرار داد. انزل من از سماه ما ان. آب از آسمان براتون فرور ایخته. فا اخرج من از سمرات رزقا، سمرات گوناگون رو روزی برای شما قرار داد. می بینید که اینا این امکانات رو خدا خواب فلا تجعلو للا اندادا، خدا ند ندارد، لا ند دلهو و لا زد. زد در مقابل قرار دادن، ند شریک مثل قرار دادن، فلا تجلول الله اندادا انداد جمع نده چرا برای خدا شریح قرار میده؟ یعنی چی؟ شریح قرار میدهیم یعنی چی؟ یعنی بنده الان خدا امر کرده است آقا نگاه به نامهرم حرام است نهی خداست نگاه نکن با یه دوستم دارم تو خیابون میرم اگر او نگاه میکنه من نگاه نکنم به من میگه عجب آدم مرتجی من دارم او رو شریک خدا قرار میدم هم ارذ خدا برای اینکه هم کلاسیم هم،, هم سن و سالم بهش بر نخوره پیش او پرستیژ من پای نیاد منم نگاه میکنم شما برای خدا شریک قرار دادی آقا روزی جسمی شما رو خدا چه ربادی قرار داده رشد معنوی شما رو خدا اگه گفته نگاه نکن یعنی یک کمک دنده است که اوج بگیری بری بالا نگاه نکن ببین چقدر رشد میکنی نگاه کن ببین چقدر افت میکنی ایناست وگرنه نگاه کو به نامحرم بر دامنه کبر یایش نمی‌شیند گر شما اوج بگیرید قلب شما روح شما جان شما اون انسانیت ما که به درجه آدمیت بناس برسه با اجتناب از این محارم و عبودیت رب حج میگیره فلا تجلول الله اندادا شریک قرار ندید برای خدا در خانه غیر خدا نروید در جمله آشنایان زدم و نیافتم ره به در ترون مودم به کمال روسیا. گرت از کرم تذیری نبود زیان سودت به سرائر زمیرم تو به جملگی گواهی